خداوندگار سخنگ سخن سوحن میگوید زبوسارت امشب تو را به سفری دراز خواهم برد این بار مقصد ما فراسوی عوالمی است که قبلا ای میخواهم تجربه ای را برایت فراهم سازم که مانند آن را قبلا ای جهانی که در آن تماما در هیئت روح و بدون کالبد خواهی بود این نخستین سفر تو به ناحیه چهارم جهان های فراسو و به درون جهان سهنگ اولین ناحیه از نواحی روح خالص و منزلگاه اتم است که کمال کیفیت را اندوختند اینجا دروازه ورود به اقلیم خداست آیا حاضری؟ او دست مرا گرفت و با انگشتانش به نرمی چشمان مرا بست هنگامی که چشمانم را باز کردم در میان سرزمین عجیبی ایستاده بودیم که آکنده از زیبایی و شکوه بود نور این جهان کلامی برای بیان نمیافت زیبایی طبیعت این سرزمین فقط به زبان رفی و شیوای یک شاعر یا در قالب نغمه ای همچون پاسترال به قابل توصیف است از میان دروازه شهر شگ عبور کردیم که احتمالا همان شهری است که قدیس یوحنا در سفر مکاشفات خود توصیف کرده است. بسیاری از استادان اک که من میشناختم به محض دیدن روازار با آوازی بلند او را درود گفتند و او هم به استقبال آنان به گرمی پاسخ داد. سپس قدم به درون کاخی از این گو که شبیه تصاویر باستانی بود از اینات روی دیوار بود. حجودهای پرهیبتی در خرقههایی از نور از ما پذیگایی کردند. به حضور روحی هدایت شدیم که زیباییش آنچنان حیرت آورد بود که هیچ کلامی برای توضیح آن نمی آبند. زدات نوری که از او ساته می شد در چهره شگفتنگیزش می رقصیدند. با فروتنی تعظیم کرد، ای سهنگ بزرگ، ما آمده ایم تا به نام روح مقتدری که آن را خدا می نامیم، به نام قادر مطلق به تو درود بگوییم سکوت درازی برقرار شد، آنگاه فرشته ملتظم درگاه اعلام داشت، پروردگار جهان چهارم با تو سخن می گوید. به دقت گوش پراده صدایی همچون حجوم طوفان آغاز به سخنی کرد دوی که با سارشاتی چرخان روح را به لرزه در می آورد. بشر وجودی معنوی است منشأ این علم مطلق با هوش محدود تو تماماً قابل درک نیست چون درک کامل امکانه به ظهور رسیدن تجلی محدود را مسدود می‌کند سرنوشت آدمی اقامت در خانه حقیقی است این خانه جایی جز جهانی بینام نیست که در آن پروردگار حقیقی کل عالم به سر میبرد. علت وجودی ناجیان سه جهان پایین از این قرار است که سرنوشت جهان سرنوشت بشر به تکامل رسیدن است میگویند هر انسان کاملی یک خداست در سرزمین داسواندوار برای خدا شدن باید فناناپذیر شد به گزار معنای این عبارت را قضیه بر حکم حقیقت به شماریم یعنی دست خوش تغییر و مرگ بودن مرگ و میر در تجلی وجود دارد سحنه ای که در آن آدمی نقشهای بسیاری را به نام زندگی ایفا می کند جاودانگی معنایی است که خدایی ایجاب می کند و واقعیتی است که در هیئت فانی و در لفظ من هستم یا آم کلمه فرمان برامن نجهان بره شناسایی می شود. این ذکر قدرت بلا تغییر نازادنی فنا ناپذیر و است که افلاک را در فضا معلق داشته، و هوشیاری را درون آدمی تعبیه میکند. ازالک همان گونه که مستحضر این قدرت کل منفی است. پروردگار سه جهانی که کنیرانجان، پارابرام یا هر نام دیگری که بخواهی بر آن بنهی از قدرتی برخوردار نیست که بتواند روح را تا ابد در عرصه خود نگاه دارد. همانگونه که کتاب مقدس بیان می کنند، این جهانها پس از چندین هزار دوره زمانی برچیده می‌شوند و دوباره جایگزین می‌شوند. این چرخه تا به همچنان تکرار میگردد. این قدرت از قماش روح خالص نیست ریشه های این قدرت در ماده استقرار دارند بنابراین این قادر به خلق روح نیست و تنها می تواند اشکال تجلیان را در قالب تن، معدنیات، گیاه و سایر اشکال ماده فراهم سازد. با این وجود برا از دیدگاه وجودهایی که درست جهان تحتانی به سر میبرند، درک ناپذیر و مطلق است. پس آم بخشی از جریان صوتی است. که علم مطلق قدرت مطلق و حضور مطلق را در عوالم زیر بخش دوم اعظم هستی برقرار میسازد. بشر کیهان زیرین میگوید، ترکیبی که از انصر فناناپذیر و فرد انسانی حاصل می شود نمایشگر کسی است که خود را در وحدت با ام می آبد. کسی که نرهین به سربردن در بدن خود را با ام یکی حس می کند این کل منظور آنان است دفیدن به این وحدت یا امید به دستن از مرگ دوم که بر تمامی روح های ساکن در سه جهان مقدر شده است این جهان‌ها را با کارما به هم بستند با توهم زمان این گونه است که ناجیانشان می گویند. تعالی یعنی این و سود از زندگی بشر رسیدن به این وحدت است. باز هم میگویم که این سخن فریب مایا جوهره قماش و اساره تمامی های مذهبی و فلسفی است. در میان صاحب نظران الهیات تنها راه پیروزی در این ستیز فلسفی رسیدن به این وحدت است. هیچ گونه فرجه ای برای تفاوت نظر در مورد آن این افراد کوشش به انجامش دارند وجود ندارد مزالک در میان آنان اختلاف نظر دیده می شود و همواره بستر این که کدام راه, راه حقیقت است نزا به چشم می خورد به همین منوال هنگامی که خدا مردی همچون استاد حق در قید حیات در میانشان ظاهر می شود که متعالی ترین حقیقت را نشان دهد نه او را می بینند فنا میل دارند ببینند. بیدرنگ به نابودی او اقدام می کنند و از بابت آن افسوس هم نمیخورند. با اقرار به اینکه هدف روح همان فنانااپذیوی است به مشاهده شواهدی میپردازیم که قضیه را تایید می کنند. این گونه شواهد را میتوان در ارتباط ارواح، تجربیات روانی پدیده های و سفرهای اسیدی یافت اهمیت و بودن این همه تحقیقات بر روی پدیده های روانی حقیقت قضیه را روشن می سازد. البته این شواهد از نوع تجربیات رضایت بخش و متقاعد کننده وحدت با کل نیستند چون واقعا احتمال مرگ دوم را نفی نمی کنند بلکه آن را به بشر ثابت هم می کنند. آدمیان عالمی فراسوی این دو جهان نمیشناسند. مگر تجربه یافتن استاد یا خدامرد در حوره بعدی هم نصیبشان شود تا جوهره آموزش هایی را فراگیرند گیرند که معالاً به خانه حقیقی راهبریشان می‌کند گذشته از تجربیات روانی واسطه دیگری از تجربیات انسانی وجود دارد که فراسوی هر گونه پدیده است فرهنگ قرب آن را شعور کیهانی نامیده است که خود گویای معنای خیش است تمامی نجاتهای بشر از دیرباز این هدف را شناسایی کرده و برای بیان آن واجه تخصیص داده اند که از تجربیاتی متفاوت نتیجه و بسیاری از زمینه های فکری را شامل می شوند. اما معنای همگی یکسان است در هر صورت معنای آن آزادی به معنای حصول رهایی از محدودیت های حسی و خداگاهی از ذات و خیش عالم است معظالک به تو میگویم مقصود از اکتصاب این آگاهی خطیر چیست؟ البته مقصود توسعه حیات روح در کالبد انسانی است ولیکن تا روزی که تو از قله سه جهان زیرین عبور نکرده و وارد چهارمین عالم فراسو نشده باشی هر تجربه دیگری اعم از بزرگ یا کوچک فقط و فقط یک قدم در طریق کمال است و بس در اکثر موارد این تجربه با رؤیت نوری عظیم همراه است در بعضی موارد جریان صوتی نیز حضور دارد در حالی که نور ممکن است در قالب قدرت معنوی و یا اقلانی تجربه شود ما به جهان بعدی جابدانگی تمامیت میابد در آن عالم هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمیتواند به خودی خود، در خود و با خود فلا شود هیچ کس بدون نیمه دیگر خود کامل نخواهد بود به همین علت آموزش های برخی از نظام های مذهبی مبنی بر عدم ازدواج به قشت احراض فنانا فردیدی تماما خطاست یک خدامت مرد مردی متعهل است و معمولا صاحب فرزند و کانون خانواده می باشد. بنابراین هر روحی در عوالم پایین دارای یک قرین معنوی است که نیمه دیگر اوست و با رسیدن به طبقات معنوی با آن اتحاد حاصل می کند این رخداد هنگامی به وقوع پیبندد که او آماده ی احراز متعالی‌ترین هدف در عالم برام باشد و قرین روح در این هنگام روح اک می باشد عشق حقیقی جابیدان است کل کائنات تحت دومین بخش اعظم هستی کامل است. همه چیز عالم مرعی تجلی است و نتیجه کارکرد اصلی است که میگوید صورتی در زیر دارد هر آنچه در بالاست این را هم بگویم که این اصل در ناحیه چهارم مستاق ندارد. تکامل به هیچ یک از عوالم بالاتر از داسوان دوار اطلاق شود چون نیکی و زشتی نزد ما اعتباری ندارد ما در هماهنگی کامل به سر میبریم و فقط در طلب نیرومندی درونی دانش و شهامت معنوی لازم به منظور برداشتن قدم بعدی به درون عالم بالاتر میباشیم شجاعت معنوی خصیصه ذاتی یک جوینده خداست بدون آن نصیبی نخواهی برد اکثر جویندگان آرزومند خدایند اما شهامت لازم را برای تصاحب، تصرف و وحدت با خدا ندارند در اینجا آن را خواهی آموخت مذکر و موننس تحت یک اصل واحد آفریده شدهاند. بنابراین هر یک باید به منشأ واحدی بازگشت کند که از آن آمده است تا چرخه را تمام کند و به چه اکتصابی نائل شود؟ آگاهی خدایی از کمال در وحدت با غرین منظور جذب شدن آگاهی نیست بلکه وحدتی که آرمانی کاملا متفاوت از فریفتگی است ناجیان کل به ما میگویند ما اتحاد با این قرین نژادی از خدایان متولد خواهد شد و این ابر مردان وارث زمین شده و آن را مکانی مناسب زندگی خدایان خواهند ساخت. تا روزی که کارما نقش پیوند دهنده عالم را ایفا می میکند، چنین آرمانی محقق نخواهد شد. اصلاحگران و آموزگاران حریف قانون کارما نیستند. کارما آنان را فریب خواهد داد. مازالت آنان احساس می میکنند این آرمان چندان هم دور از دسترس نیست. و از دیدگاه یک ناظر منطقی هم هست بزرگترین شاهد این تحول آزادی زن در اجتماع بشر است نشانه های این تحول در بسیاری از موارد دیگر نیز مشهود است اما بیداری زن عامل اصلی این تغییر است بیداری زن نخستین شعاع طلوع نوری است که حقیقت واقع شده است اینکه زن در حال بازیافتن جایگاه بال در زندگی تو با آگاهی حسی است، ثابت می کند زمین آماده میزبانی نظام برتری از وجود ها کتاب حال در زمره توده های بشری نبوده است. موارد بیشمار روشن یا شعور کیخانی که امروزه توجه عالم را به خود جلب کرده است، ثابت می کند نوعی بیداری نژادی در حال وقوع است که، درک وحدت با جریان صوتی عام را نوید میدهد. مکاشفاتی که در اثر این تجربه حاصل می شود، نه یک کشف شخصی و نه یک عملکرد ویژه قدرت خداوندی، عبارت چونین گفت خدای و همچنین با من اصطلاحی است که یک واصل خداگاه به خدمت میگیرد چون ردف نور کیهانی را گم کرده است گاهی هم مصلحت ایجاب میکند که برای ابلاغ پیام شعور کیهانی از چنین عباراتی استفاده شود. چنانچه واژه‌ی مکاشفات را با تجربه وصل جایگزین کنیم، تصویر بهتری از حقیقت امر خواهی یافت. به همین علت است که موهانتا ای را که در آن نور کیهانی را به تو می میکند، تجربه وصل مینامد. این نور تو را به سوی مسیر راهنمایی میکند. مفهوم گستردهتر این تجربه عهدهدار شدن مسئولیت هدایت تو به سوی خانه حقیقیت می باشد بیش از هر چیز دیگری کلمه مکاشفه به آن معنایی که در نظام مذهبی آمده است دلالت بر این دارد که نقشه آفرینش گردون ناتمام بوده و خالق به محض یافتن فرد مناسبی که بتواند آخرین گزارشها را به نوع بشر ابلاغ کند، قوانین طبیعت را موقوف کرده و مکاشفات صورت میگیرد. اشاره من به جایگزینی این دو کلمه به منظور اصلاح این نقطه نظر بود. گردون عوالم سگانه کامل است، گونه که در ابتدا بوده، در لحظه حاضر و در آینده نیز برای همیشه جهانهای بیپایان خواهند بود چرخه ای که نه آغازی دارد و نه پایانی آدمی در آگاهی فردی خودش میتواند روند این چرخه را در عرض تی کند لذا ناتوانی او در درک کمال آفرینش این واقعیت را تغییر نمیدهد که خلقت کامل است کامل است آدمی نمیتواند چیزی به آگاهی کیهان جهان منفیش بیافزاید و نه از آن بردارد اما میتواند گستره آگاهیش را تا جایی ببخشد که محدودیت های حقیر خیش شخصیش را تا ارتفاعات و اعماق روح جهانی افزایش دهد پس از کسب وحدت با جریان صوتی عام، چه کسی قادر است محدودیتی برای خدای او قائل شود؟ او چیزی از جهانهای برسر نمی‌داند، پس همانجا می‌ماند تا روزی که داناییش به واسطه وصل افزایش یابد و بتواند حکمت جهانهای دیگر را درک کند سودت هر مکاشفه ای بیدار کردن روح به منزلگاه حقیقی و نیازهای اوست که شامل نیت و کردار خیر برای هنگان به عنوان یک ضرورت محض در جهت رسیدن به شادی. هم می شود. بنابراین ای بشر در جهان شما دوستی یک فضیلت نیست بلکه وسیله ای برای حفاظت از جان خیش است با این میزان از وصل به ساحت بی پایان جهان های فلکی هرگز نخواهید توانست از قانون کارما بری شوید. به این ترتیب مکاشفاتی که اصل و مبنای نظام های عقیدتی به شمار می قابل انطباق با مراتب مختلف وصل به حلقه های خودشناسی و خوداشناسی هستند مکاشف تعیین کننده درجه وصلی هستند که یک واتل به آن رسیده است واقعیت واصل شدن فرض به مراتب درون حقیقت همیشه حاضر هستی همانند احراز جایگاه‌هایی است که تضمین نمی کند سجه خان پایین بالاخره به بهشت بدل شوند هرچند بسیاری از استادانی که از جهان برام عبور کردند این گونه آموزش دادند میتوان گفت سه جهان پایین جایگاه‌های ظاهری آلم و هرچند حجره های بیشماری دارند لذا هرگز تعداد کافی از واصلین مراتب حقیقت وجود نخواهد داشت که به زمین را به محل سکونت نظام برتری از آنچه که همکنون آن را اشغال کرده است بدل کند تنها امیدی که میتوان بر مرد از اینجا ناشی میشود که قدرت احیا کننده خدا یا به عبارت دیگر روشن در حال گسترش است این وعده در تمامی پیشگویی ها و پیامبری های تاریخ به چشم میخورد آنچه ما دیگر تکامل مینامد و مکاتب اسرار اکتشاف الهی این همه اشاره به هنگامی دارد که اراده خدا همان گونه در زمین اجابت شود که در بهشت همه ی کسانی که به کساب شعور کیهانی نائل شدهاند بشارت از روزی می دهند که این محبت بر تمامی بنی آدم نازل خواهد شد لذا داشواری توضیح مطفی بر چگونگی اجابت این محبت عظیم باری طاقت فرسا بر دوش آنان شد از تو می پرسم چرا میل دارید در جهانی زندگی کنید که در آن تاریکی حکم فرماست؟ در اینجا حقیقت بشارت فوق زیر سوال می رود. مگر نه اینکه هدف یک استاد حقیقی این است که دست تمامی روح ها را برگیرد و آنان را از دنیا بیرون برده و در ناحیه بینام سکنا دهد بسیاری مکررن کوشیدند شگفتی های عالم کیهانی را برای شنوندگان بازگو کنند اما بیشتر مخاطبین از وسعت فکر لازم برای گوش فرا برخوردار نبودند. عده ای از مریدان توانایی دریافت نور و صوت را دارا بودند و امروزه عدد بزرگتری از مردم این خواستگی را دارند. و اما مذاهب و علوم انسانی شما اشاره به زمانی دارد که تیاری زمینی شما از ستیز و رنج را شناسایی کند ولی کن تا زمانی که کارما وجود دارد چون این ارسهی چگونه امکان اجابت پیدا خواهد کرد و تا زمانی که بشر در زمین منزل دارد کارما هم خواهد بود و تنها راه رسیدن به چنین آرمانی با یافتن استاد حق در قید حیات میسر می شود تنها در صورتی که خدا در رحمت خیش را گشوده و روشنزمیری را به جهانهای زیرین ارزانی دارد چنین رؤیایی محقق خواهد شد و ما در این آقالیم زندگی می‌کنیم، اجابت چنین آرمانی را پیش‌بینی نمی‌کنیم. چرا که این به صورت محقق می‌شد، زمین حقیقتاً مانند عوالم نور، صوت و عشق خداوندی بهشت می‌شد. در واقعیت روشنزمیری تمامی مشکلات روح فرو می‌ریزند. صفات منفی محو می‌شوند. چون فقط شادی کیهانی و نیت خیری بر ما حاکم می شود که فراسوی مفاهیم ذهنی قرار دارد سخنان او به پایان رسید و ویبازارتارس مرا به بیرون راهنمایی کرد سپت خود را ایستاده در کنار ویبازارتارس در اتاق خواب خانم یافتم او زد و به من شب به گفت